از دیده خون دل همه بر روی ما ربد بر روی ماز دیده چه گویم چه ها ربد ما در درون سینه هوایی نهفتین بر باد اگر ربد دل مازان هوا ربد خورشید خاوری کند از رشد جامه چاک گر ماه مهر پرور من در غبا ربد بر خاک راه یار نهادیم روی خیش بر روی ما رواست اگر آشنا رود سیل است آب دیده و هر کس که بگذرت گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود ما را به آب دیده شب و روز ما زان زن که بر سر کوگش چرا رود حافظ به کوی میشت دائم به صدق دل چون صوفیان سو معدار سفار بد